شعبه مذاکره بازخوانی تجربه مذاکره ای ایران و آمریکا درباره موضوع عراق در گفتگو با اعضای تیم ایرانی مذاکره کننده با آمریکا قسمت سوم چرا زمان به ضرر آمریکا پیش میرفت و مسئله امنیت در عراق به گرهی باز نشدنی تبدیل شده بود. جنایات ضد انسانی سربازان آمریکایی در زندان‌ها و حتی مناطق مسکونی به اسم مبارزه با تروریسم و برقراری دموکراسی افکار عمومی عراق را روز به روز نسبت به حضور آمریکا حساس تر و تر می کرد. از طرفی درگیری‌های پراکنده ارسه را بر تفنگداران آمریکایی تن کرده بود. همچنین اقدامات تروریستی القاعده با چشم پوشی اشغالگران موجب ناامنی در منطقه شده بود. در نتیجه همسایگان نگران اراق در چندین دوره از جمله در اردیبهشت 86 در شرم الشیخ مصر برای یافتن چاره‌ای در مورد مسأله این کشور گرده هم آمدند اما آنچه در این اجلاس بیش از مسأله اراق در صدر اخبار رسانه‌های دنیا قرار گرفت مساله مذاکره ایران و آمریکا بود در اجلاس شرم های متکی بود شاید ده بار آقای اوشارزیوری از پرش میز حییت بلند شما توی حییت ما که بابا داره تمام میشه خانمان راشم آقای ده دیگه باقای متکی بشین تو من آقای متکی بکن نمیدونستان دستور کاری داره دستور کاری نداره توان متکی حالا نظر چی؟ من دستور کار داری؟ گفت نه واقعا ندارم که دیگه آقای متکی او رو خیلیول کردن آقای متکی قبول کرد که آی عراخشی با نماینده اون رو که نماینده رو در امور عراق بود پیشینم به دیگه صبته بکنم. موقعی که من به روشار زیباری گفتم که آی عراخشی بر نمدی روونه من روبرو ماهیت روی روبرو آمریکا روبر بود موقعی که من این دشار زیباری رفت و گووش خانم رایس گفت که این جویی این راش واقعا نتونست خودشه. پس از اصرار مکرر امریکایی ها ایران پذیرفت که خارج از محل اصلی اجلاس نمایندگان دو کشور با یکدیگر ملاقات کنند و نماینده ایران پیشنهاد طرف آمریکایی را بشنود اما اما ها گرفتن عکس یادگاری به اسم مذاکره در میان حاضران در اجلاس را مهمتر از ارائه پیشنهادهایشان می‌دانستند. بعد قرار شد که ما این هدایت کنم بیرون از سالون نماینده آمریکا عمدن اومد تو سالون جلو چشم حیطا که من یعنی با ایران دارم مذاکره میکنم یعنی برای آمریکا مهم بود که به دنیا به فهمونه به حیطا به فهمونه به کشورا به فهمونه ما با ایران در حال مذاکره هستیم یعنی جمهوری اسلامی از روی اقتدار آمریکا ما درخواست مذاکره کرد نه از روی ضعف آمریکا بود. این مسئله نقطه مهمش اینه یعنی ما نیاز به مذاکره با آمریکا نداشتیم این آمریکا بود که ما نیازمند آقای حسن کاظمی قومی رئیس هیئت ایرانی مذاکره کننده با آمریکا آمریکایی که فر... اجازه نمیخواست بده به این که سفارت ما اونجا باز باشه و به هر بهایینی می‌خواست سفیر رو راه نده امروز به یک شرایطی برسه که بیا درخواست مذاکره بکنه درخواست مذاکره دکتر رضا امیری مقدم براشون مهمی تو دینه که بگن ما با جمهوری اسلامی ایران داریم مذاکره میکنیم میخوان به دنیا بفهمونند که ما با, با همین کشوری که مثلا سی سال و ای سال مذاکره نمی این اینم پای میز مذاکره با ما اومد هدفشون اینه حدفشون اینه که واقعا مشکل حل بکنن اما اداره امریکا هنوز در سیاستش واقعیت جمهوری اسلامی رو نپذیرفته. در نتیجه اینی که پیشنهاد مذاکره میده شاید اناصرش در حاکمیت بر این بابرن اما اراده سیاسی هنوز به طریق دیگری می اندیشه با این فرضیه نباید به اوزاکره در بست درسته که در امریکا نخبگان امریکا به این نتیجه رسیدن که ندر برابر انقرام صد ایجاد کردن مانه یا انحرافی یا این کام به هیچ کدوم از اینها مسیر پیشرفتی کشمن رفته و توسع رفته این مجموعه درسته که به این واقعیت رسدن که ادبیات رفتاری امریکا با جمهوری اسلام ایران باید تغییر پیدا کنه وزن این فکر و اندیشه که باید ما رفتار ایران رو تغییر بدیم امکان تغییر نظام وجود نداره در خیلی از این اندیشمندان و فریختگان امریکا امروز شکل رسیم امریکایی ها مرتب پیغام میدن گاهی میندیسن گاهی پیغام میدن که ما قصد تغییر نظام اسلامی رو نداریم به ما اینجور میگن جواب اینه که ما نگران این نیستیم که شما قصد تغییر نظام اسلامی رو داشته باشید یا نداشته باشید که حالای اصرار میکنید که ما این قصد رو نداریم اون روزی هم که شما قصد تغییر نظام اسلامی را داشتید و این را به سراحت اعلام کردید هیچ کاری نتوانستید انجام بدید بعد از این هم نخواهید توانست انجام بدید روایج بیماری‌های روانی و بالا آمار خودکشی در میان تفنگداران دریایی آمریکا، دولت مردان کاخ سفید را مجبور به چاره‌اندیشی میکرد. از یک سو، نخبگان ایالات متحده راهی جز مذاکره با ایران را پیش پای سیاستمداران نمی‌گذاشتند و سوی دیگر، خود خودبرتربینی و بیمنطقی نمایندگان واشنگتن عملا مذاکرات را به بنبست میکشند. آمریکا باید از این ابزار مذاکره استفاده کنه برای اینکه این شرایط رو فراهم بکنه از اینجا در تملقات روانی و عملیات روانی به اینکه ایران مداخله میکنه در این مسائل ناامنی دخالت میکنه از تروریسم هاگیر از اون اونطوری حمله بکنه به مرکز دیپلماسی را سرکورس ایران, ایران. سکه درخواست آمریکا از ایران برای مذاکره درو داشت روی رسمی آن در قالب ادبیات دیپلماتیک توسط مقامات مطرح می شد. روی دیگرش هم توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی مرتبط با آمریکا به نمایش در می آمد. کنسولگری ایران در اربیل اراق یکی از این پیام ها را دریافت کرد. در نیمهشبی شب شب های زمستان هشتاد نیروهای نظامی آمریکا از چند بالگرد روی بام سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران فرود آمدند، ضمن نقض قوانین دیپلماتیک پنج کارمند کنسولگری را شما شنیدن قبل از اونها حمله کردن دیپلمات ما رو در الویل گرفتن، تو بغداد دو سه بار ما رو دستگیر کردن، شکنجه کردن، دیپلمات ما را رو بودن. به نام گروه های القاعده، دیپلمات ما رو گرفتن تو فجی ترین حالت شکنجه کردن آمریکا یا پاهاش سولاخ کردن، هنوزم واسه رو پاژ وجود داره که بگن القاعده از گروه تروریستی هستند که بگی به ما بفهمونن که همونجوری که تروریست داره ما رو می‌کشه، شما رو داره میکشه ولی ما می‌دونیم آمریکا اینه. این روشن بود برای ما آمریکا هست. ببینید که خود این اقدام در حقیقت یه دلیلش خرافه‌کنی از این بحران بود که آمریکا بود. که ایران داره دخالت می‌کنه، مشکلات امنیتی وجود داره، ولی نه پیام رو هم بود. الا خود این هم یک ضعف دیگه که این کار بود خب پس در چون فضایی از امریکا باید مزاکره بشه اما از نظر ایالات متحده شکستن نماد سازشناپذیری ایران با به عنوان کشوری قدرتمند نزد ملتهای آزاده دنیا ضروری بود به همین دلیل آمریکایی‌ها ها از هیچ فرصتی برای ارائه پیشنهاد مذاکره خودداری نمی‌کردند. یک بار من خودم رفتم عربی، سالگرد تشکیل به دموکرات کردستان عراق بود آقای بارزانی همون روزه به دنیا اومده جشن تولد خودش هم بود <تصحیح> <تصحیح> ما رفتیم مثلا بعد با آقای بارزانی توی دفترش توی صلاح الدین سرش ملاقات کردیم اینو گفت که برای من یه جشنی گرفتن، هم, هم جشن تولده تو هتل خانزاد هتل خانزاد یه هتلی بین سلاهدین و بین عربی یه تپه بلندی و اینا اگر شما بیایید بیاییم اشحال میشهیم این هم کنیم رفتیم و اونجا متاجهشیم خلیرزاد هم اومده خلیرزاد سفیر بود رویه. من هم در اومدم میز رو یه جوری انتخاب کردم که پشتم بشه به آی خالیزاد که بودی در بشونم تیلری از شخصیت های کردر آقی وزاره و این نشسته بودن من بودم این که بودم گرفه مشکل صورتو بودی از پشت داره صورت منو میبوسته آقای برگشتن که جلال تالبانی جلال تالبانی جفت خالیزاد نشسته بود از اونجا برنش بود؟ اومد منو بوستید و بعد گفت که آی خالیزاد گفته به شما سلام برسودم ما سلامی خلیزت نداریم خلیزت اگر ای افغانی باش و ای افغانی باش و ای افغانی ما نداریم بعد آی طلبانی گفت که خلیزت بدش نمیاد گفتم نمیتونیم با نمید. یعنی در هر حالتی و در هر شرایطی اینا دنبال بونن که توی این ادقل از بعد از اشغال حراق تا یومون هازا که امریکای دارن تلاش میکنن که با مزاکن سؤال اینه پس چرا امریکا میگه مذاکره ایران که با انقلاب اسلامی و تداوم آن به نماد مقاومت در برابر قدرت های شرق و غرب شناخته شده بود، این بار تصمیم گرفت پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند. آیا دوران تیرگی روابط دو کشور به پایان خواهد رسید؟ برابر این آمریکایی‌ها از موزی ضعف مفصل از ایران درخواست مذاکره میکردن از طرف عراق چی این تروریسم را عملیات می‌کنه این بدم کشور اشغال شده معلومو بیگناه دارن کشته میشه و جمهوری اسلامی ایران تجربه مقابله با ناامنی رو داره اعتماد به جمهوری اسلامی وجود داره ما همجنگ تحمیلی رو پشت و سر گذاشتیم بحران های تروریستی رو ما در داخل کشور تجزیه طلبی را ما تجربه کردیم مردان دیپلمات ایران با انگیزه کمک به برادران مسلمان خود در عراق تلسیم چندین سالی مذاکره با آمریکا را شکستند و به پای میز مذاکره رفتند مهم‌ترین هدف ما این بتونیم دولت عراق رو از اون بوقران و اون چی عبور بدیم که به نظر من عراقی‌ها سنش بردن و ذکر اعتمادی که بین دو ملت وجود داره این اعتماد با وجود همه شیطنت های رژیم بث و جنگ تحمیلی و اما شما میید که قلوب به هم نزدیکه از یک سو واقیتش اینه که او در یک ناهمنی بد جریف رفته بود برای ایران حفظ حکومت عراقی پرویلویت اساسی. از او ارز ممدون شما تو بتونید موازه نظام اصول نظام ارز ممدون شما سر نگرانی بود. بس امریکا باید مذاکره کنه با این اراق باید مذاکره کنه ایران به دلیل نگاهی که نفته به اراق داره باید این مذاکره رو بپذیره اگرم نپذیره این بحانه این که ایران نیامد مشکل ما رو حل کنه میتونه باقی بمونه بس ما رفتیم به سمت مذاکره سناریوهای احتمالی مذاکره با آمریکا طی جلساتی در سطوح عالی جمهوری اسلامی بررسی شد و تیم مذاکره کننده پس از دریافت رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی عازم بغداد شدند.